کشتی نگه داشت، گندل سرازیر شدند، نردبان تناب بافت را به پایین انداختند، کارمندان گمرک برش آمدند و از آنجا به کار خود مشغول شدند، تخلیه کشتی آغاز شد، آشنباخ از خدمه کشتی خواست که گندلی برایش بگیرند که او را با بارش، به ایستگاه کشتیهای بخاری کوچکی ببرد که میان شهر و لیدو آمد و شد میکنند چه او قصد داشت کنار دریا اقامت گزیند؟ قصدش را تأیید و فریاد کشان از بالای شبه پایین به سوی سطح آب که گندلیرها به لحجه محلی با هم دعوا می کنند اعلام می ده. ولی او هنوز نمیتواند پیاده شود. چمدانش مانه است که حالا از پلکان نردبانی شکل به پایین کشیده می شود. بدین سان او هنوز هم تا دقایق چندی نمیتواند از مزاحمت پیر مرد چندشاور که مستی بدجوری کارش را ساخته خلاص شود. این یک میخواهد به مسافر بیگانه به سلامت بگوید و تعظیم کنان عرض ادب می کند. بهترین اقامت را آرزو میکنیم با بهترین تهییات. اوقواق اکسکوزه و بنجوق، جناب والا. آب دهانش سرازیر میشود. شود. چشمهایش را میبندد زبانش را به دور دهانش میمالد و ریش رنگ آمیزی شده زیر لب پیرانش روبه بالا سیخ می شود و با زبان الکن می گوید. بهترین تعارفات برای عزیزک عزیزک دلبند و زیبا و ناگاه دندان آری از فک بالا بر فک پایین آشنباخ توانست از دستش فرار کند، در حالی که از پله های تناب بافت پایین می رفت، صدای نازک، جیغ مانند و منقطع او را میشنید عزیزک زیبا و زریف. هر کس دیگری هم که به جای آشنباخ بود، همین وحشت تند و گذرا، همین ترس پنهانی و غمی که وجودش را فرا گرفت به او هم دست می داد. اگر بنا بود همچون او برای نخستین بار بر گندلی ونیزی سوار شود این قایق عجیب که از اعثار افثانه به همان شکل نخستینش به مانده بود و چنان سیاه که از همه اشیای عالم فقط تابوت‌ها چنینند، چونینند یادآور خاموش و پنهانی جنایتکاران در شبی موچخیز بود ولی بیشتر به یاد مرگ، تابوت و تشی و ازا میانداخت به یاد سفر واپسین این سفر خاموش و بیصدا ولی هرگز کسی دریافته یافته که نیمکت این زورق این سکوی سیاه تابود فام با جادستی و روکش سیاه ماتش نرمترین و سستی بخشترین نیمکت جهان است آشنباخ چون پایین پای گندولیر روبروی بارش که نزدیک منقار قایق جمع شده بود نشست این را دریافت ها همچنان با هم دعوام. با کلماتی که قابل فهم نبود، با حرکات دست و قیافه و با خشونت همدیگر را تهدید می کردند. ولی شهر آبراها، گفتی با سکوت خاصش، سر و صدای آنها را به آرامی در خود حل می کند، مادیتش را می گیرد و بر امواج می پاشدش. اینجا در بندر هوا گرم. مسافر از نفس اسکیروکو تنش سست شده بود، بر پشتی های نرم لم داده، در لذت بیخیالی چنین نامعمول و شیرین چشمانش را بست. با خود اندیشید، سفر کوتاهی خواهد بود، کاش تا ابد ادامه می یافت احساس کرد، تاب می و آهسته از ازدهام و سر و صدا بیرون میخزد گردا خاموش و خاموشتر میشد جو صدای برخورد پارو با امواج و صدای توهی امواج که به نوک گندل برمیخورد به منقار زورق که اریب سیاه با نوکش که همچون گرز هل بود با خنجر و گلابش راست بر فراز آب ایستاده بود. صدای سوومی هم بود، صدای نجوایی که نجوای گندلیر بود و با حرکات بازوانش پاره پاره شده از میان دندانهایش بیرون میریخت. گندلیر با خودش حرف میزد. آشنباخ سر بلند کرد. و با شگفتی اندکی دید که آبهای اطرافش بر دامنه‌ی خود می‌افزاید و او به میان دریا باز می‌گردد پس به نظر میآمد که نباید بیش از حد در استراحت افراد کند بلکه باید مراقب باشد که خواستش به درستی برآورده شود در حالی که نیم چرخشی به طرف پشت سرش به خود می داد، گفت پس می رویم به ایستگاه کشتیها. پاسخی دریافت نکرد پس چرخ کاملی زد و در صورت گندولیر که پشت سر او بر جایگاه بلندش در برابر آسمان کدر راست ایستاده بود نگریسته تکرار کرد پس می رویم به ایستگاه کشتیها. از شکل و شمایل این مرد نافرمانی و حتی سبعیت می‌بارید. به گونه دریانوردان لباس آبی به تن داشت. شال زردی به کمر بسته بود و کلاه حسیری بیریختی که بافتش از هم می گسه است، گستاخانه کج بر سر گذاشته بود. ترکیب صورتش سبیل بور و فرفریش زیر بینی کوتاه و نوک برگشته او را چهره‌ای میبخشید که به هیچ روی از نژاد ایتالیایی نمینمود با آنکه از لحاظ ساختمان بدنی بیشتر نحیف به نظر میآمد چندان که انسان قابلیت خاصی برای حرفه در او نمییافت پارو را در حالی که هر بار تمامی نیروی بدنش را به کار میانداخت با قدرت بسیار حرکت میداد. از شدت تلاش چند بار لبها را عقب کشید و دندانهای سفیدش را بیرون انداخت. ابروان سرخ نما را چین داد. نگاهش را از فراز سر مسافرش به سوی افکنده به لحنی قاطع و تقریبا خشن پاسخ داد. شما به لیدو می روید آشنباخ گفت البته ولی من این گندل را گرفتم که به سن مارکو ببردم من می خواهم سوار واپورتو شوم. شما نمی توانید سوار تو شوید آقای عزیز چرا نمی توانم؟ چون تو بار قبول نمی کنم درست می گفت، آشنباخ به یاد آورد، دیگر حرفی نزد، ولی رفتار وقیحانه و اهانتآمیز این مرد که با رفتار معمول مردم این سرزمین در برابر بیگانگان هیچ تناسبی نداشت، قابل تحمل نبود، پس گفت، این به من مربوط می شود، شاید من بخواهم بارم را به انبار بسپارم، سکوت حاکم بود. صدای برخورد پارو به امواج به گوش می رسید آب با صدای خفعی به جلوی گندل می و بار دیگر صدای نجوا و زمزمه بلند شد گندلیر از میان دندانهایش با خود حرف می زد چه کار می شد کرد؟ با این آدم نافرمان این آدم مسمم و دهشتآور تنها میانم واجه دریا ای نمیدید که خواستش را به کرسی بنشاند ضمن که اگر اسیان نمیکرد چه راحت میتوانست در جای نرمش لم دهد مگر آرزو نکرده بود که سفرش به درازا بکشد تا ابد به دراز بکشد پس آقلانه ترین کار همین بود که بگذارد کارها مسیر خود را بپیماید. مهم آنکه خیلی هم مطبوع بود گفتی این تناسانی است که از نیمکتش از آن سکوی کوتاه با روکش سیاه درو کارگر می شود در حالی که با زربات پاروی این گندولیر خود کامه که پشت سرش نشسته بود به نرمی تاب می‌خورد این تصور که گرفتار دست جانیان شده به گونه‌ای رؤیایی در سراشنباخ راه می‌یافت و از بیکار انداختن فکر خود و کمک خواستن از آن ناتوان بود این فکر که شاید پای پول در میان باشد بیشتر ناراحتش می گونه احساس وظیفه یا قرور یا شاید هم خاطره این احساس که باید کاری کند بار دیگر حس تقیان او را برانگیخت پرسید برای این مسیر چقدر پول میخواهید و گندولیر در حالی که از بالا به او نگاه می کرد داد به موقع خواهید پرداخت پاسخش معلوم بود آشنباخ بدون تأمل گفت من پولی نمیپردازم اگر به جایی که نمیخواهم ببریدم شما میخواهید به لیدو بروید ولی نه شما من خوب میرانم آشنباخ با خود گفت راست میگوید و آرام گرفت راست میگوید خوب قایق را میبری. حتی اگر به نقدینه من هم نظر داشته باشی و با پارویت از پشت سر مرا به دیار حادث هم بفرستی باز باید گفت خوب قایق را میبری. منتها چون نشد. حتی هم سفر هم پیدا کردند. قایقی با نوازندگان دورگرد، مرد و زن که با نوای گیتار و ماندولین آواز می‌خواندند، پهلو به پهلو گندل می‌رانند و فضای خاموش را بر فراز امواج از اشعارشان به زبان بیگانه می‌آکندند. آشنباخ در کلاهی که به طرفش دراز کرده بودند، پول انداخت. پس ساکت شدند و رفتند. نجوای گندلیر بار دیگر از سر گرفته شد نجوای تکه پاره و منقطع گندلییر که با خود حرف میزد بدین سان به مقصد رسیدند در حالی کم باج پدید آمده از حرکت کشتی بخاری که به شهر میرفت تاشان میداد دوتن از کارمندان شهرداری که دستها را به پشت زده رویشان به لنگرگاه بود در ساحل بالا و پایین میرفتند. آشنباخ پای پل چوبی به کمک پیرمردی از آن است که در باراندازهای ونیز با تناب و قلابشان به کمک قایق و کشتی می آیند از گندل پیاده شد و چون پول خرد نداشت به هتل مجاور پل رانی رفت تا پولش را خرد کند و مزد قایقران ران, ران تور که به نظر خودش درست می آمد بدهد در تالار هتل کارش را به انجام میرساند باز میگردد بار سفرش را در گاری در اسکله می و گندل و گندولیر غیبشان زده است پیرمرد تنابدار گفت زد به چاک مرد خوبی نیست آداب نمی دان. جناب والا او تنها گندلیه است که آداب نمی داند. کسان دیگری تلفن کردند دید که منتظرش هستند پس زد به چاک آشنباخ شانه داد پیرمرد گفت حضرت آقا مفت سفر کردند و کلاهش را جلوش گرفت آشنباخ سکهی در کلاهش انداخت پس دستور داد که بارش را به هتل ساحلی ببرد و به دنبال گاری از میان خیابان روشن سوزان که با کافه ها و بازارچه ها و پانسیون های دو طرفش از میان جزیره به طرف ساحل میرفت راه افتاد. از در عقب یعنی از طرف باغ وارد هتل بزرگ و وسیع شد. و از تالار بزرگ و جلوخان انداخت رفت به دفتر هتل از آنجا که قبلا جا رزرو کرده بود کارش را فورا راه انداختند. یکی از کارکنان هتل که مرد کوچک و آرامی بود با ادبی چاپ لوسانه و سبیلی سیاه و کت فراک فرانسوی تن داشت او را با آسانسور به طبقه دوم هدایت کرد و اتاقش را نشانش داد اتاقی دلنشین با مبلمانی از چوب گیلاس که به گلهایی معتر آراسته بود و با پنجره های بلندش چشمنداز خوبی به دریا داشت بعد که آن کارمند آنجا را ترک کرد آشنباخ جلو یکی از پنجره ها رفت و همچنان که پشت سرش بارش را به اتاق آورده در آنجا می دادند، نگاهش را به بیرون به ساحل خلوت بعد از ظهر انداخت و به تماشای دریای بیافتابی استاد که هنگام مدش بود و امواج کوتاه ملایمی به ساحل میفرستاد. مشاهدات و تأثیرات انسان تنها و خاموش در عین آن که مبهمتر از تعملات اشخاص اجتماعی است نافزتر نیز هست. افکارش سنگینتر و عجیب است و هرگز نیز از نشانهای از غم بری نیست صحنهها و مشاهداتی که معمولا به نگاهی خنده ای و اظهار نظری از آن میگذرند افکار او را بیش از آنچه باید به خود مشغول میکنند در سکوت و خاموشی عمیق میگیرند معنی مییابند به حادثه بدل میشوند و به صورت خاطره پر احساس یک ماجرا در میآیند از تنهایی زیبایی پدید میآید زیبایی شگفت انگیز و افسونساز شعر ولی تنهایی نتایج مردود و ناپسندی هم به بار میآورد پوچی ناخوشایند و نامجاز چونین بود که مشاهدات این سفر پیرمرد نفرت‌آور با آن عزیزک گفتنش و گندولیر مزنون از مزد محروم خاطر مسافر ما را همچنان پریشان می‌کردند. اینان با آن که در کار عقل خلالی وارد نمی‌کردند و اندیشه را موضوع درخوری به دست نمی‌دادند ذاتاً عجیب بودند و احتمالاً به دلیل همین تناقض پریشانی‌زا به نظر او چنین می‌آمد در همان حال با چشمانش به دریا درود می‌فرستاد و از اینکه می‌دید ونیز چنین در دست است احساس سرور بل از کنار پنجره برگشت دست و جهت تکمیل وسایل راحتش دستوراتی به دختر خدمتکار هتل داد و از مأمور سبزپوش سوئیسی آسانسور خواست او را به طبقه پایین ببرد چایش را در ایوان مشرف به دریا خورد آنگاه پایین رفته مسافتی از گردشگاه کنار دریا را در جهت هتل اکسلسیور پیمود. چون برگشت، به نظرش آمد وقت آن است که برای شام لباس عوض کند. و این کار را با دقت و صرف وقت انجام داد. چنان که شیوهش بود، چون عادت داشت، ضمن مرتب کردن سروز خود، به کارش هم ادامه دهد. و با وجود این اندکی پیش از موقع در تالار حاضر شد که بخش اعظمی از میهمانان هتل را به هم بیگانه و با تظاهر به بیعتنائی نسبت به هم همه را متفقاً در انتظار غذا یافت. روزنامه از روی میز برداشت در صندلی چرمی جا گرفت و در بحر جماعت رفت که با مردمی که در توقف پیشینش با آنها هم منزل شده بود به گونه خوشایند تفاوت داشتند افقی وسیع در برابرش رخ گشود افقی که بسیاری را به راحتی در خود جا میداد. اسوات زبانهای مهم جهان آهسته و مبهم در هم می آمیختند. لباس شب که با اعتبار جهانیش به صورت نشانی آدابدانی درآمده بود جامعه بشری را با همه تنوعش معدبانه شکل وحدت بخشیده بود صورت دراز و بیاحساس آمریکایی، خانواده پرجمعیت روسی، خانمهای انگلیسی و کودکان آلمانی با پرستارهای فرانسویشان، همه در کنار هم به چشمی خود انصر اسلاوی ظاهرا از برتری خاصی برخوردار بود در همان نزدیکی به زبان لهستانی صحبت می کردند تازه بالق و نیمه بالق تحت سرپرستی یا در معیت خانمی دور میزین این گرد آمده بودند سه دختر جوان ظاهرا پانزده تا هفده ساله و پسرکی گیسو بلند که شاید چهارده سالش میشد. آشنباخ از زیبایی پسرک در شگفت شد صورت پرید رنگش با حجب ملیحی که داشت در قاب موهای فرفری اصلی رنگ با بینی صاف و کشیده لب و دهان درنگیز و آن وقار ملکوتی که در قیافش نقش بسته بود یادآور مجسمه‌های یونانی آثار پرشکوه گذشته بود در عین کمال سوری از زیبایی یگانه و منحصر به فردی برخوردار بود که بیننده نه در طبیعت و نه در آثار نقاشی و مجسم سازی نظیرش را بیاد نمی آورد جز این آنچه نظرش را جلب می کرد، اینکه اینجا ظاهرا تزادی اصولی از لحاظ موازین تربیتی در کار بود که در طرز پوشش و به طور کلی رفتار خواهرها با برادرشان به چشم میخورد. آرایش دختران که مسنترینشان را میشد کامل و بالغ به حساب آورد، چنان عفیفانه و محجوبانه بود که از ریخت انداخته بودشان جامعه یک نواخت و راه به وار به رنگ قهوه‌ای آجوری تا پایین زانوان نادل برانه و گشاد و آگاهانه بدقواره با یغه های افتان سفید به عنوان تنها شکاف در آن پوشش یک دست امکان هر گونه دل را از اندام هاشان میروبو. موهای صاف و چسبیده به سر چهرههاشان را حالتی صه پسند و خالی از احساس میبخشید. اینجا یقینا دست مادری در کار بود که هیچ سر آن نداشت که سختگیری مربیانه ای را که در مورد دختران لازم میدید در مورد پسر هم به کار بندند. این یک وجودش از نرمی و لطافت شکل گرفته بود پیدا بود از اینکه قیچی را به موهای زیبایش ببرند عبادارند دارند موهایی که همچون موهای خارکش تا میان پیشانی روی گوشها و پایینتر تا پس گردنش تاب خورده بود لباس ملوانی انگلیسی که آستینهای پف کردش به طرف پایین تنگتر و دور مفصلهای زریف ظریف دستهایش که هنوز بچگانه ولی کشیده بود تنگ بسته میشد با بندها نوارهای توری و گلدوزیهایش به قامت ظریفش نشانی از بینیازی و ناز پروردگی میبخشید با نیم رخ در برابر نظارگر خود نشسته بود پایی را با کفش بر راق پای دیگر نهاده آرنجی را بر جادستی صندلی نعی نشتکیه داده و گونه را بر پشت دستش خوابانده بود و در نشستنش حالتی بود آمیخته از ادب و بی بدون کمترین نشانی از حالت شق و رق و تقریبا زیر دستانی که گویا جز اصلو شده بود یعنی او بیمار بود؟ آخر رنگ صورتش بر زمینه تیره موهای طلایی به سفیدی آجگونه ای میزد یا آنکه موضوع ساده تر از اینها بود تفلی دردانه که از روی علاقه خود خودسرانه و یک طرفه بر دیگران برتری یافته آشنباخ این فرض دوم را بیشتر میپسندید. تقریبا در طبیعت هر هنرمندی این گرایش خودخواهانه و ناحق به قبول بیعدالتی زیبایی آفرین و جانبداری و ستایش از تبعیز اشراف منشانه به گونه مادرزاد نهفته است. گارسونی در تالار راه افتاد و به انگلیسی اعلام کرد شام حاضر است. جمعیت کم کم از در شیشه‌ای به سالن غذاخوری رفتند. مهمانان دیر کرده نیز از آسانسور و جلوخان آمده یک راست روانه سالن شدند. خدمتگاران شروع کرده بودند به غذا دادن ولی های جوان همچنان گرد میز نهی نشان نشسته بودند. و آشنباخ نیز در صندلی گودش به راحتی جا خوش کرده ضمناً به نظاری زیبایی مشغول با آنها صبر می کرد بالاخره سرپرستشان خانمی نیمه اشرافی چاق و کوتا با صورتی سرخ اشاره کرد بلند شوند او با ابروان کشیده صندلیش را عقب کشید و به خانومی بلند بالا لباس سفید خاکستری به تن و آراسته به مرواریدهای فراوان که وارد سالن شد تعظیم کرد. رفتار این زن سرد و سنجیده بود. آرایش موهایش که اندکی هم پودر به آن زده بود و نیز دوخت و برش لباسی که به داشت، همه از سادگی خبر می‌داد که همواره آنجا که دینداری جزئی از اشرافیت به حساب می‌آید زمینه اصلی صلیقه را تشکیل می‌داد او می‌توانست همسر یکی از کارمندان عالی رتبه آلمانی باشد تنها تجمل نامعلومی که در ظاهرش به میخورد و ارزش آن در واقع از سنجش به بود عبارت از گوشواره‌ها و گردنبندی بود که از سرشته بسیار بلند مرواریدهایی به درشتی گیلاس با درخششی ملایم تشکیل میشد. دخترها فورا با برادرشان از جا برخاستند و برای بوسیدن دست مادرشان خم شدند که این یک با لبخند خوددارانه ای در صورت آراسته ولی اندک خسته و نخفت آلودش از فراز سر آنها به یک سو نگاه کرد و چند کلمه‌ای به فرانسه خطاب به سرپرستشان بر لبانش جاری شد. آنگاه به طرف در شیشهای گام برداشت. گروه جوان هم به دنبالش. دخترها به ترتیب سنشان پشت سر آنها سرپرستشان و آخر از همه پسرک. او پیش از گذشتن از آستانی در به دلیلی نامعلوم سر برگرداند و چون کس دیگری در تالار نبود نگاه چشمانش با آن رنگ خاکستری سپید فام به نگاه آشنباخ که روزنامه بر زانوان قرق نزارش با نگاه آنها را تقییب می‌کرد درآ درام